أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين رسيما مولانا وصاحبنا بغية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مغدمه الفداء اللهم كل وليك الحجة بن الحسان صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وخافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك توعاً وتمتعهم فيها طبيلاً السلام عليك يا مولاتنا يا فاطمة الزهراء السلام عليكم يا أهل بيت النبوة بحمد الله ببرسية عدلية نغليةك براية بحدة شخصية وجود آورده شده رسیدیم دسته دومی که می از اون دسته از آیاتی که برای وحدت شخصی وجود به آنها استدلال شده از آیات وجه نام ببریم آیاتی است که در اونجا اشاره به وجه الله شده فاینما تولوا فسم وجه الله بقره آیه 115 به هر سمتی که شما رو کنید اونجا وجه الله هست خب وقتی که به هر سمتی شما رو بکنید اونجا وجه خداست خب وجه که جدای از اون وجه نمیتواند باشد پس در واقع شما به هر سمتی که رو بکنید اونجا خداست به هر مکانی به هر سویی که رو بکنید اونجا خداست به هر جسمی که رو بکنید همون خداست. به هر چیزی که شما نگاه بکنید همون خداست. به باطن خودتون نگاه بکنید همون خداست. لذا از این استفاده می شود کرد که و استفاده کردن که وقتی که به هر چیز که نگاه بکنیم همون خداست و ما در واقع به خدا رو کرده ایم به سوی خدا رو کرده ایم اونجا و الله هست و اونجا خداست این معنای جز وحدت شخصی وجود نمیتواند داشته باشه آیه دوم همینه که کل شیءن هالکن الا وجهه قصص آیه چهار. هر چیزی رو که شما در نظر بگیرید اون هلاک می شود، اون نابود می شود. فقط چیزی که هست اون وجه خداست که اون باقی مونده. به تعبیر فنیتر می توانیم اینطور بیان بکنیم که حقیقت مشتق، مشتق حقیقت است در متلبس بالمبدع. لذا خود آیه شریفه حالا جدای از بحث نظارت این آیه و نگاه این آیه به آینده زمان حال رو داره این آیه بیان می کنه حالک خودش مشتقه و اگر بخواهیم ما این رو به زمان حال معنا بکنیم یعنی هر چیزی الان نابود است هر چیزی الان نیست است همه چیزها الان عدم است و فقط چیزی که باقی می ماند اون وجه الله هست که واسو الله هم همون خداست پس یعنی همه چیز خداست غیر از خدا چیزی نیست و این مفاد وحدت شخصیه وجود هست آیه بعدی که آیه 26 و 27م سوره الرحمن هست بیان میکنن که خداوند متعال میفرماید کل من علیها فان هر چیزی که روی این زمین هست این فانی است همه نابود میشوند و یبقى وجه ربك عزوجلال و رب الاكرام فقط وجه پروردگار تو باقی میماند می توانیم همین مشتق را به زمان حال معنا بکنیم هر چیزی که روی زمین هست همین الان فانی است همین الان نیست هست همین الان عدم است و اون چیزی که فقط باقی میماند و اون چیزی که هست اون وجه پروردگار تو هست که یعنی همون خدا هست پس همه چیز خداست و غیر از خدا چیزی نیست و همه چیز وجودشون وجود خداست و وجود جدایی از وجود خداوند متعال ندارند آیات دیگری رو بعض دیگر به اون تمسک کردن ممکنه که در زمره آیات برسکر بکنن که حالا خیلی اونها دلالت تامی نداره و بسیار ضعیفتر است دلالتش بیننی حتی به حسب ظاهری هم چه بسا این دلالت رو نداشته باشه فی بد الامر و فی بد النظر هم حتی این دلالت رو نداره لذا دیگه از طرح اونها ما خودداری میکنیم در نقد این دسته از آیات که آیات وجه باشه خب ما مطالبی رو ان از الله عرض می‌کنیم اولا اینکه باز شما اخذ به ظاهر نکردید که ما اینکه مدعای خودتون بوده میخواستید به نحو حجت وحدت شخصیه رو از آیات قرآن استفاده بکنید می‌خواستید از ظاهر آیات قرآن استفاده بکنید و حجت خودتون رو همون ظاهر قرار داده بودید و ابن عربی قبول نداشت کسانی رو که با عقل خودشون آیات رو تعویل میبرند اما خب شما هم در اینجا فی الواقع ظاهر رو تعویل بردید زیرا اولا اون چیزی که در همه این آیات بیان شده اون وجه الله و بیان نشده که خود خدا، بیان نشده الله شما از کجا وچه الله رو الله معنا میکنید لذا اگر هم بخواهید به ظاهر این آیات اخص بکنید باید بگویید که همه چیز فانی می شود، همه چیز حالک هست یا به هر چیزی که شما رو بکنید اون فقط وچه الله هست خداف اینطور نیست که باقی بماند به حسب این آیات اون چیزی که باقی میماند فقط وجه الله باقی میماند خود وجه الله فرق میکند به حسب اطلاق لفظی و کلامی از خود الله حتی اگر به نحو جسمانی هم فرض بکنیم وجه جز است با اون کل فرق میکنه شما چطور و از کجا حکم جز رو به حکم کل سرایت میدهید در این آیات خداوند متعال فرموده اگر خداوند متعال هم به حسب ظاهر صورتی داشته باشه و یک ذات صاحب صورتی باشه در اینجا فقط اون صورت باقی میماند نه اون ذات لذا شما از کجا معنا میکنید که اینی که خداوند متعال فرموده به هر جا رو بکنید اونجا وجه الله هست معنای اون این است که خود خدا هست حکم جز, جز که حکم جز رو که به کل نمی شود سرایت داد مگر با قرائن دیگری با قرائن عقلی یا با موارد دیگری که از جاهای دیگر شما ثابت کردید و خداوند متعال می بفرماید می بفرماید شما به هر جا که رو بکنید فا اینما تو فسم الله نیتوانست این را بفرماید اما فرمود نه فسن نه وچه الله. فقط خداوند متعال باقی میماند فقط وجه خدا باقی میماند همه چیز فانیست وچه خدا باقی میماند خب اینی که خدا اینطور فرموده رضا نمیشود حکم وجه الله را سرایت داد به حکم الله و اینی که حالا وجه الله باقی میماند از کجا میگویید که وجه الله همون خداست و و مراد این همون وحدت شخصی است اینی که هیچ چیز باقی نمیماند حتی دیگه در اینجا سخن از ذات الهی نیست سخن از الله نیست فقط وجه الله باقی میماند خب این چه ربطی به وحدت شخصی وجود دارد که همه اشیاء همه امور و وجودشون همان وجود خداست این چه رفتی به وحدت شخصیه وجود داره و خود معنای وجه در اینجا و وجه الله می شود معانی مختلفی از خود وچه الله فهمید و چه بسا اراده معانی مختلفی شده باشد از وچه الله در توضیح این مسئله و این مطلب ارد میکنیم که جدای از این بحث که اصلا ماده وجه چیست خود مشتقات ماده وجه که مواجهه هست و سایر مشتقات وجه همه این مشتقات این ماده اینها به چه معنایی دلالت کنند و چه بسا خود معنای حقیقی وجه قبل از اینکه وضع شده باشد برای صورت در این معنا مورد استعمال واقع شده و دلیلی هم نداشته باشیم که دیگه معنای اول ترد شده و نسخ شده باشد و فقط معنای صورت معنای متعینه وش باشه حالا جدای از این بحث نمیخوایم ورود به این بحث پیدا بکنیم همین مقدار اشاره کافی است چون دیگه ضرورت داره به بحث های تخصصی لغوی که از حوصله این بحث خارجه حالا جدای از این مبحث و معنای حقیقی وش به حسب مادش چیزی رو که ما به نحوه مسلم می توانیم بگوییم این است که یک لفظ ممکن است در یک کلام خاص این معنای خاصی برای خودش گرفته باشه یا به طور آمتر بگوییم گاهی اوقات الفاظی در لسان آیات و روایات اینها معنای خاصی دارند به نحوی که حقیقت شرعیه شدهاند در این معانی وضع دیگری فی الواقع صورت گرفته در این معانی كما اینکه آقایون علما و اصولیین های زیادی رو در این زمینه دارند مثل بحث سلات و چیزهای دیگری که میفرمایند اینها حقیقت شرعیه شده است لذا برای اینکه ما بخواهیم در هر کلامی از جمله آیات و روایات یک معنایی رو ما استفاده بکنیم باید این رو ببینیم که آیا اولا این لفظ خاص در این کلام معنای خاصی پیدا کرده است یا نه اگر خب جزء کلامهای عمومی و, م... و روزمره باشه جزء های عرفی باشه خب حمله به عرف می‌کنیم اما خب این احتمال در خود آیات قرآن کریم میاد که با توجه به اینکه وجه زیاد در آیات قرآن و روایات وضعیه ما استعمال شده چه بسا حقیقت شرعیه در این زمینه رخ داده و در اینجا هم فی دیگر حقیقت است نه اینکه استفاده و استعمال لفظ در این معنا مجاز باشد لذا در اینجا هم حقیقت هست و برای اینکه ما این رو بفهمیم باید ما این مجموعه از آیات و این مجموعه از روایات رو با هم در نظر بگیریم و ببینیم که آیا همچین چیزی اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده که ما می این ادعا را بکنیم که با بررسی معانی ورش در آیات قرآن می فهمیم که چیزی جدای از ذات الهی استعمار شده موارد فراوان است که سخن از وجه الله آمده و با اینکه مانعی نداشت به حسب ظاهر که خود الله بیان بشه نه همش سخن از وجه الله با بررسی این موارد با بررسی موارد دیگری دی که حتی سخن از وجه مخلوقین آمده در حالی که منظور خود اون صورت ظاهری نیست مثل آیه شریفه اقم شکل دین حنیفا که آیا فقط منظور اینه که صورتت رو به دین هنیف روی بیار نه معلوم من معلوم هست که منظور این نیست رضا می توانیم این رو به نحوه محکم بگوییم که آنچه که از معنای وجه در آیات قرآن کریم آمده چیزی غیر از خود ذات الهی، خود وجود خداوند متعال در این آیات معناش هست و اراده شده که انشاءالله به معنایی که از خود لسان روایات استفاده می شود کرد و خود عیمه معصومین در معنای وجه بیان کردن انشاءالله اشاره میکنیم. اشکال بعدی که ما عرض می اینه که خب حالا جدایی از بحث وجه وچه رو هم شما به معنای خود خدا گرفتید وچه الله رو همون الله گرفتید خود معنای حالک و معنای فانی رو شما از کجا به معنای نیستی و به معنای عدم گرفتید جالب اینجاست که بعضی از کتاب لغت اتفاقا به همین آیات تمسک کردهاند و گفتند که با توجه به این آیه پس معنای حلاک یکی از معانی هلاکت که جزء معانی ثانویه هلاکت است جزء معانی ثانویه فانی شدن هست می توانیم استفاده بکنیم با توجه به این آیات که بله یکی از معانی اینها همون معنای نیستی و عدم هست میتوانید عزیزان به بعضی از کتب لغت که حالا شما یک مراجعهای داشته باشید این رو به راحتی میبینید می مراجعه بکنید حالا از جمله کتاب مفردات راقب که تمسک که به خود همین آیات شده در معنای نیستی و در معنای عدم خب خود همین مصادره به مطلوبه و چیزی رو که لاقل میرساند این است که معنای اولی و ظاهری هلاکه و فنا معنای عدم و معنای نیستی نیست بلکه به حسب ظاهر معنای حلاک یعنی نابود شدن اون چیزی که از حلاک متبادر میشه و به ذهن خطور میکنه و استعمالات بسیار فراوانی دارد که نمیشود این معنا رو انکار کرد همون معنای نابود شدن معنای از بین رفتنه و معنای فنا هم همینطوره اون هم به معنای نابود شدن و از بین رفتنه کما اینکه خود اهل عرفان مستلح هم در این معنا لفظ فنا رو زیاد بکار برده اند لذا شما از کجا این از بین رفتن و نابود شدن رو به معنای نیستی و عدم میگیرید که اولا خود مشتق کما اینکه حقیقت است در متلبس بالمبدع به نحو فعلی در خود آینده هم استعمال مشتق در زمان آینده اینطور نیست که مجاز باشه و اگر بخوایم ما اون استفاده رو بکنیم اینطور نیست که ما استفاده مجازی کرده باشیم بلکه اون استعمال هم استعمال حقیقی است لذا می توانیم با توجه به این که خود معنای حلاق این است که نابود می شود یا معنای فانی این است که نابود می شود معنای این آیات رو این بگیریم که همه چیز بعداً نابود می شود حتی اگر این رو به نهو تلبس فعلی مشتق به این مبدع رو ما بخواهیم بگیریم معناش این است که الان نابود شده است الان از بین رفته است همه اشیا خب اتفاقا این فرع بر این است که یک چیزهایی بوده باشند که اون چیزها نابود شده باشند مثل اینکه ما میگوییم چیزهایی رو که بوده و شما دیده اید اینها نابود شدهاند. خب این اتفاقا فرع بر ثبوت اشیا هست و هیچ ربطی به وحدت شخصیه وجود نداره و از کجا این استفاده وحدت شخصیه وجود؟ از این نابود شدن و حلاق شدن شما خواهید کرد و از بین رفتن دالی و دلالتی بر این ندارد که یعنی اصلا از اول هم نبوده آیا واقعا کسی از شما عزیزان وقتی یهک کسی بگوید چیزی از بین رفته است این به ذهنتون خطور میکنه که از اول هم نبوده است از اول هم وجود منهازی نداشته از چیزی نبوده است آیا این به ذهن شما خطور میکنی یا اینکه نه این نابود شده است خب این چه دربتی به وحدت شخصی وجود دارد که همه اشیا وجودشون همون وجود خداست و بسیار وحدت شخصی وجود معنای است از این آیات و حتی اگر ما حالک و فان رو هم به معنای نیستی و عدم بگیریم اتفاقا با توجه به ظهور این آیات این اتفاقا با معانی دیگری از وحدت وجود میسازد که خود شما قائلین به وحدت شخصی اون رو منکر هستید و احیانا اون رو به جهله صوفیه نسبت میدید و عبارات تندی رو نسبت به اونها به کار میبرید اتفاقا با این معنای وحدت شخصی وجود سازگار هست که همه عالم حقیقتا هیچ و پوچ هست، حقیقتا نیستی هست، حقیقتا عدم محز است، صرف خیاله، صرف خیاله نه اینکه وجودشون وجود خدا باشد خب. اتفاقا با این میسازد شما میگویید نه نسبت وجود به اونها داده میشد بلعرز و مجاز خب خود نسبت وجود بلعرز و بلعرز و مجاز و خود نسبت مجازی این خودش معونه زائده میطلب نیاز به قرینه داره شما از کجای این آیاتون رو استفاده کردید که نه خداوند متعال که میگوید کل شیءن این معناش این است که مثلا این بلعرز و مجاز اینها هستند نه اینها همش معنای زائده میتربد اتفاقا اگر بخواهی به معنای خود فانی و حلاک رو به معنای نیستی بگیرید با این معنا میسواد که حقیقتا همه چیز نیست است خیال است عدم محض است و با معنای و با وحدت شخصی وجود این مرتبط نیست و اینکه اشکال بعدی این که اشاره هم کردیم در آیات قبلی دسته آیات قبلی هم اشاره کردیم همه این آیات فرع بر این است که نه اتفاقا داره ثبوت اشیاء رو میکنه ثبوت کل شیئن میکنه نه فرموده کل شیئن در توهم شما فرموده کل شیئن حال کن فعینما توولو عین خودش ثابت است در اون ظرف مکان و هر چیزی که رو کردید اون خداست معلومه که ظرف مکانی ثابت از خود شما ثابت هستید خب اینا همه فرع بر ثبوت غیر خدا هست و بعد می گوید که خب اونجا مثلا فسمه وجه الله اول داره ثابت میکنه اینها رو و طبقه وحدت شخصی وجود در خود امکنه خود مکان هم همون خداست لذا اون چیزی رو که از اینها می شود ما استفاده بکنیم اتفاقا این آیات داره بر ما وجود اشیاء رو ثابت میکنه به نحو حقیقت ظاهرش صدق حقیقی وجود بر اینهاست که این باز هیچ رفتی با وحدت شخصی وجود ندارد وبلکه نافی اون است و مطلبی رو که حالا به عنوان اشکال بعدی می توانیم نقل بکنیم که حالا بعد داریم توضیح بدیم اون چیزی که در لسان روایات ما و مفسران حقیقی قرآن که خود قرآن به اونها نازل شده خود به وجود نازنین رسول خدا نازل شده و رسان قرآن اهل بیت اسمت و طهارت هستند اونها می توانند بیان بکنند که معنای این آیات چیست؟ مثل اینکه کسی حرفی را بزند بعد شما استفاده ای غیر از اون چیزی که خود فرد کرده رو اراده بکنید و به خود اون فرد هم رو نکنید که ببینید خود اون فرد چه اراده کرده لذا اون چیزی که در لسان روایات مفسران حقیقی قرآن که وجودات نازنین احسومین هستند هم فراوانه هم مسلمه اینی که مراد از ورش در این آیات فقط وجودات نازنین اهل بیت اسمت و تهارت هستند و در بعضی از روایات هم حتی معنا شده که مراد دین خداست اما خب باز در روایات دیگری خود دین خدا نسبت داده شده به وجودات نازنین اهل بیت که دین خدا هم همون وجودات نازنین اهل بیت هست که من به بعضی از این روایات که روایات در این زمین فراوان هست اشاره می کنیم و درجات این روایات رو من به نقل به حال نقل می از بسائر احمد ابن محمد ثقه ان الحسين ابن سعيد که همون حسین ابن سید سقه محمد ابن اسماعيل سقه منصوره ان منصور که همون منصور ابن يونس سقه ان ابی حمزه سقه همش سقاتند که این در روایتی بله خود حضرت فرمودن که قال قلت لعبی جعفر علیه السلام به امام باغر علیه السلام عرضی داشتم این قول رو قول الله عز وجل کلو شیئن حالکون الا وجهه قال فیهلک لکو کلو شیئن و یبقل وچ همه چیز حلاک می شود و فقط باقی می ماند اعظم ان ان الله عز وجل اعزم من این یوسف بالوجه خداوند متعال عظیمتر از این است که بخواهیم ما خدا رو با وجه توصیف بکنیم ولكن معناه كل شيء هالكن الا دينه همه چیز همه چیز حلاک است و حالک است مگر دین خداوند متعال كل شيء کن الا دينه اینطور هم میشود بخونیم والوجه الذي اتى منه و اون وجهي که به سبب اون وجه به خداوند متعال می رویم پس منظور این آیات همون دین خداست و وجهی که ما با اون وجه به سمت خدا روی می‌آوریم باز روایتی است که از کتاب توحید نقل می‌کند اینم ماجلویه ماجلویه که سغه از محمد ابن عطار که سغه از سهل سهل که نزد بسیاری از علما و به حقیر هم به ایشون ترجیح داره عن البزنتی که سقه هست ان صفان الجمال که هست عن ابی عبدالله نحنو وجه الله لا لایحلک ما همون وچه خدایی هستیم وچه خدا هستیم که هلاک نمیشود در قرآن ذکر شده است باز در کتاب توحید آمده است که ابی سقه ان سعد سقه ان ابن ایسا سقه ان علی ابن سیف سقه ان اخیه الحسین که ایشون ممدوه ان ابی که مت خود حسین ابن سیف رو ما میتوانیم استفاده بکنیم انعبیه که سیف ابن عمیله باشه که ایشون هم سقه هست ان در نقل بهار آمده خسیمه که همون خویسمت ابن عبدالرحمن هست که وجه فی اصحابنا که نجاشی نقل میکنه که ایشون هم سقه است. قال عليه تو عبدالله علیه السلام انقول الله عزوجل کل شیئن حالکن الا وجه همه چیز حالک هست الا وجه خداوند متعال قال دینه منظور همون دین خداست و کان رسول الله صلی الله علیه و وسلم و امیر المؤمنین علیه السلام دین الله اینها همان همون دین خدا هستند و وجه الله همون وجه خدا هستند و عینهو فی عباده عین خدا هستند در بدنگانش و لسان او انتق به و همون لسان خداوند متعال هستند که خدا با اونها سخن میگوید و یدوه علا خلقه دست خدا هستند بر خلقش و نحن وچه الله لذی یعتامند ما همون وچه خدایی هستیم که با اون وجه به خدا روی می آورند اینی که در آیات دیگری آمده توریدون وجه الله اینها وچه خدا رو می اون وجه خدایی که از اون وجه به سمت خدا روی می آورند اونها وجودات نازنین اهل بیتند لن نزال و فی عباده ما دائم بندگان خدا هستیم مادامت لله فی هم رویه تا وقتی که خداوند متعال رویه اش رویه ای در اینها داره قل تو و من رویه قال الحاجه منظور همون حاجت است مادامی که خداوند متعال شاید منظور این باشد که خیلی در بندگان خودش ببیند ما رو در بندگان خودش در میانه عباد خودش نگاه می دارد لم یکن لله فی همهاجه اگر برای خداوند متعال حاجتی نباشد رفعنا علی فسنعما احب خداوند متعال ما رو از میان اونها بیرون می و هر کار که دوست دارد با اینها می کند. در همه این روایات وجه اختصاص داده شد به عمی طاهرین نحن و الله بایون نفر که نه همه بندگان خدا و چالله حسن طبق وحدت شخصی خب همه وجه الله هستن. همه خود و خدا هستند اینی که نه شما باید بیایید سراغ وجه الله از وجه الله به سمت خدا روی بیارید خب این در آ... این روایات آمده که اهل بیت اسمت و تارت هستند و این هیچ سازگاری با وحدت شخصی ندارد در ادعیه خودمون هم هست مثل این فراز از دعای ندبه که عین نه وجه الله الذی لذا اون چیزی که از روایات ما میتوانیم استفاده بکنیم به نحوه مسلم این است که منظور از وش اونجور که در روایات فراوان آمده در عدیه مختلف آمده اون مراد وجودات نازنین اهل بیت اسمت و طهارت یا اون دینی که اون بر مبنای وجودات نازنین اهل بیت هست هست و باقی اصل لذا معنای این آیات و روایات همین میشود که خود دین خدا که همون دین اهل بیت هستن حقیقتاً هست بقیه دین ها نابود هستند لذا این دست ساز آیات هم هیچ ربطی به وحدت شخصی وجود ندارند و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته